بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب يبدأ بالجار حدثنا محمد بن منهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد كله باب هذا باب كتاب كتابة المفرد من بخاري باب يبدأ بالجار نسان بعد دار خوبي كادن نس حمسية شروع بعد حديث المجاري هفتومين حديث حديث عبد الله بن عمر تكراره این حدیث گزارش ولی خب یک مطلبی هست جا امام بخاری با این عنوان از این حدیث برداشت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرماین مازال هم چنان جبرائیل مازال جبرئیل علیه الصلاه و السلام یوسینی بالجار هم چنان و سفارش میکرد به همسایه حتی ظننت انو سیرثوک تا جایی که گمان کردم که فکر کردم که همسایه هم ارث میبره از همسایه دیگر خب چه ربطی داره به این عنوانی که امام بخاری گذاشته بر این حدیث اون چیزی که ما میتونیم برداشت بکنیم از این عنوان اینه که ما بخاری میخواد بگه که همونطور که در عرض و میراست اولویت فرزندان حق اون فرزندان در اون مال از اون پدرشون یا مادرشون یا فرزندشون همونطور که اینها حق و حقوق دارن همسایی هم حق و حقوق دارن حق و حقوقی که ماها باید مراعاتش بکنیم همونطور که انسان نمیخواهد فرزندانش از خیرش محروم بشن مالی را میخواد برای اونها نگهداره اونها محتاج نشن گرسنه نشن همون همون حق همسایه داره نباید گروس بشه نباید تشنه بشه نباید حاجتی داشته باشه و تو اون حاجتشو میتونی برآورده بکنی و دست بکشی از برآورده کردن اون حاجتش نیازی نیازمندی چیزی داره نسبت به امری حاجتی عروسی داره یا مریزی داره دنبال درمانشه وظیفه ما هست حتی اگر باشه که برین حفر الحمی فاتحه ای چیزی روشون بخونی رقیه شرعی روشون انجام بدیم دلشون خوش باشه این چیزی که خیلی از ولما گفتن چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایان کسی کی میتونه به برادرش نفع رسونه فلی فعه و اون نفع رو بهش برسونه کسی که میتونه در تماورش هست خب از باب الله همسایت وقتی که میتونین خیر رو در حقش بکنید چون خیلی از مریضی‌ها هست که با هم رقیه شرعی درمان میشه شاید اون مشکلی از چش زخمی یا مشکلی از بیماری روحی روانی داره که با اون قرآن تتسکییم بشه با اون قرآن درمان بشه بالذکر الله تطمی نقللو و نزلله قرآ ما هو شف قرآ شفاست قرآن آرامشه غیر از اون عجر عیادتی که ما داریم در مقابل اون حقی که همسایه دارد در طببال ما با اون عیادتی و اون چقدر پاداش گذاشته انسان خیلی از امور خیر را کم مثلا همین تعزیه شخصی فوت میکنه از در همسایه انسان میره به تعزیه به جنازه اون فردی که از اون خانواده فوت شده رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم میفرکسه که به تعزیه برادرش بره روز قیامت حله و لباسی سبزرن جامعه سبز بر او میپوشانند سبب افتخار و سبب تکریم تکریم میشه اینجوری در روز قیامت در بهشت الله جل شانو اب چرا انسان از این فضیلت خودش رو محروم بکنه وقتی که میتونه این همه پاداش را برای چی گذاشته الله جل همونطور که در مقابل کار پاداش‌ها گذاشته کسی میگه سبحان الله به حمد یک درختی براش کاشته میشه در بهشت اینم هم همینطور در مقابل تعزیه در مقابل تسلیت در مقابل دلداری در مقابل عیادت در مقابل همون حق واجبی که بر گردنت داره از طعام از غذا اگر فقیره اگر محتاجه که تو تأمینش بکنی حق واجبه نه که بگی مستحب چون تو در توانت هست و میتونی من از حقوقه کلمه‌ی حق استفاده میشه حق الجار حقی که همسایه به گردنت داره حقی که همسایه همون که میناس برا حق در مال تو دارن حق در مال تو دارن همسایه هم حق در تو داره در مقابل اون احسانت خوبی عیادتت در مقابل اون تعزیت تسلیتت حق داره به گردنت فقط ارث نمیبره ولی اونها بقیه هست سر جاشه بقیه سر جاشه فقط ارث نمیبره ولی بقیه حقوق حق همون طور که پدر و مادر فرزند خواهر برادر خال عمه حق و حقوق دارن همسایه همون حقوق را داره همه حق و حقوق ها هست الا چی الا بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور و ابي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح له شاه فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ناقشنا يك جملة حديث حديث أبليش وما داشت حدث أفتاد الشهار حدث أم من عائشة بعد داشت حديث عبد الله بن عمر الآن آه حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه مجمعين ستنة الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يك لفظ يك لفظ ستنة صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامو ناق میکن از هممية اي مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان کردن از حق و حقوق يعني اي حدیث اي سکم نجد اتخيل مهم عبدالله من عمرون العاص رضي الله عنهما ميگویات انه ذبحت له شه بزیرا سر مزن فجعله يقوله لغلامه به اون برداش به اون خادمه ميگه اليهودي هدیه دادی از اون من نه که صدقه دادی هدیه دادی اتحاد تحابو تحاب رسول الله صلی الله علیه و سلام می هدیه بده تا اینکه محبت بین شما ایجاد بشه همدیگر را دوست داشتن فلله وظیفه شرعی است الان میاد انشاءالله از جمله حدیثی که خواهیم داشت و خواهد اومد یک وظیفه شرعی که ما محبت همدیگر را داریم و در مقابل محبت و ایجاد محبت ما پاداش می داریم که گفتم حدیثش خواهد اومد. خب این صحابی رسول الله علیه که یاد گرفته از رسول الله علیه این سنت خواهد یاد میگیره اون بچهش اون خادمش اون حتی بردگانی که نزدش بوده میخواهد یاد بگیرن خب توصیه میکنه میگه هدیه دادی هدیه دادی دوباره تکرار میکنه اهدیت للجار الناهودی بعد میگه یا سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله ما یزال جبریل بالجار توصیه میکنه همچنان جبریل به من همچنان توصیه میکرد همچنان جبریل به من توسیه و سفارش میکرد به همسایه حتی ظنن تو انو تا جایی که فکر کردم که عرض میبره اون همسایه از همسایه دیگرش خب این حدیث دلال برچی میده اینکه همسایگان چه مسلمان شغل مسلمان به گردن ما حق دارن به گردن ما حق دارن بس عموم و خصوصی هست در احادیث لا یکل طعامک الا تقي جای خودش در کنار خودش و این که همسایگان حق حقوقی دارن در اون طعام ما هم جای خودش. اون ازباب باب فیلت احسانه. امر زایدی هست میخوای دعوت بدی متقی آن را دعوت کن. سر سفرت آدم متقی بشینه این چی اومده بهطور عام اومده؟ ولی که اینجا در حق همسایه بطور خصوص اومده. در بحث همسایگان دیگه بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوتی نیست. همونطور که مسلمانش حق داره بر تو یهودیش هم حق داره، و الى آخر بقیه هم حق دارند از چی؟ اینی از باب بگیم احسانی که الله خاص از ما از باب دعوتی که شاید و خوشی که در دلش ایجاد میکنیم اون رو به طرف دین بکشیم و الى آخر ای هست این از محاصن دین اسلامه این یک وظیفه شرعی است این یک وظیفه هست. اون فضله اون اضافه هست. بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله باب و يهدي الى اقربهم بابا حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا كلهم من باب باب يهدا إلى أقربهم بابا حديث ولا ونجامدش شيء حديث قابلي ولا حديث بكيفي اولویت باقیه، اون کسی که در منزلش نزدیک‌تر به در منزل ما اقرب هم بابا که در منزلش نزدیک‌تره حدیث رو میاره این اصطلاح رو کرده حدیث ام المؤمنین رضی الله عنها که میگوید گفتم یا رسول الله علیه الصلاه و السلام این نلی جاری دو تا همسایه دارم فإلى أيهما أهدي با کدوم یکی هدیه بدم تسارع نکنش حدیث را شنیده در شعن هدیه حدیث رو شدید در حق همسایه پیش تازه میخواد عمل وكون بأنفر مدير رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله سكتوا بيكي شرقنا قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما من كبابا ومكسي كدرش بمنزلت نزيكتر ترخوناش بمنزلت ويوم منعشة نزيكتر ون أولو تراز مباقيهم سيغان قال المؤلف رحمه الله باب الأدنى فالأدنى من الجيران حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره. من باب باب الأدنى فالأدنى من الجيران. حديث دارين باب زكنا ميكنه أسريه ساس حسن برسيد ميكنه. الأدنى فالأدنى من الجيران نزيكه نزيكته أسمهم صيغان. هم صيغان حد, حد حدود الشقادة. از آخر شروع کنیم تا به اون اولاترش که نزیگ آخرش اون کسی که جزو همسایگان حساب میشه حسن بسری میگه وقتی که سوال میشه از همسایگان میگه حق همسایگی چل خونه جلوه چل خونه پشت منزلت و چل خونه دست راست و چل خونه دست چپت یعنی شمال و جنوب و شرق و غربت چل تا منزل اینا همسایگانته. هست هم. اولاترینش ترین منزلی که به خونته اینا هست. که حق بگردن ادرا همسایگانی که حق بگردن ادرا بله قال المؤلف رحمه الله باب من اغلق الباب على الجار حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن, عن ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه خو خب 51 باب از ابواب کتاب ادم باب من اغلق الباب على الجار در منزلشو بر همسایه میبنده حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رو میاره ابتدا سخن خودشه میگه لقد اتى علينا زمان او قال حين وما احد احق بديناره ودرهمه من اخيه المسلم میگه یک بره زمانی بود موقعی که عزة اسلام درش بود می‌گه کسی نسبت به درهم و دینارش مستحق‌تر از برادرش نمیدونست یعنی اون مالی که داره برادرش رو شریک در اون مال می‌دونه‌س یعنی خودش رو اولاتر در اون مال از برادرش نمیدونست حز اسلام صحابی خونش رو نصف میکنه درسته قوت ایجاد میکنه رسول الله صلی الله علیه و بین اصحاب مهاجرین و انصار مال براشون عزیز نبود مال براشون عزیز نبود اگر مالی داشتن اون برادر خودش رو شریک در اون مال می‌دونسه شریک در اون مال میدونسن حتی تا جایی که ابتدا و خوبتی که ایجاد کرده بود رسم میوردن از هم دیگه برادر از برادر نه برادری تنیا برادر ایمانی از برادر ایمانیش رسم میورد وقتی که با خوهم دیگه رو میگرفتن مهاجرین و انصار بعد این قضیه منسوخ شد خب عبدالله بن عمر داره این قضیه این عزت رو داره یاد میکنه این چنین بود ما برادر خودمون رو برادر ایمانی خودمون در مال خودمون بیگانه نمیدونسیم ثم الان اما الان این اون دوران بود اما الان دینار و درهم آحبه ایله احدنا من اخیر مشن. الان مال عزیز تر از برادری، از برادری ایمانی، از خود اون برادر مؤمن، هم شرعش و هم اون کسی که ما موازفی بر قبولش. کراست الله صلی الله علیه و علیه و سلم. یومن احد قم حتی یوحب ما یوحب لنفسه. ایمان نداره کسی ازش من. اینکه اون چیزی که برای خودش دوست داره برای برادرش هم دوست داشته باشه. یه الان زمان عوض شده. الان مال عزیز شده این, این دنیای که رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمن بالپشه‌ای پیش الله ارزش نداره این دنیایی که رسول الله صادق میگه دنیا ملعونه دنیا ملعونه پسته چرا اینقدر عزیز بشه در دل شما حالا اگر عبد عمر این رنجش رو داره در اون برهه زمانی که صحابه زنده بودن و تابعین زنده بودن و جهاد بر پا بود این صالحا و صالحین بودند اگر این رنجش رو ام دوران داره الان این دوران چی میگه که برادر از برادر قهر خواهر از خواهر قهر حالا بر سر طلاقی بر سر ارث و میراسی، الان چی الان دل‌ها داغ دیدن خصوصاً مومن متقی که می‌خوام ارتباط قرار بکنه با برادرش با خواهرش ولی اونها نمیخوان سر لج افتادن خصومت افتادن به خاطر چی اون بال پشهه، اون دنیای پست، اون دنیایی که نه چیزه. چقدر از برادرای ایمانی هستن که برسر دنیا قه کردن، از جام فاصله گرفتن و سید گورگان شدن. کدام گورگ؟ شیطان. رسول الله صلی الله عليه و سلام میفرماید: ما من ثلاثة في ركب ولا بدو لا تقام فيهم الصلوات إلا وقد استحوذ عليهم الشیطان فعليكم بالجماعة، فعليكم بالجماعة. انما ياكل الذئب من الغنم القاسيه نفر نیسته چه شهر چه در سفر نماز جماعت رو برپا نمیکنن نماز جماعت جمعه اجتماع نماز رو برپا نمیکنن نماز جماعت مگر اینکه شیطان بر اونها چیره میشه الا و استعا الا ناكنت محاله نماز جماعت شما ازش تخلف نكنيد شیطان بر شما چیره نشه الا وقد استحوذ عليه مگر اینکه شیطان چیره بشه برش فعلیکم بالجماعه ناکنید امر دستوره بس سخت و محکم این جماعت را بگیرید چرا؟ انما یکل و من الغل چون ابلیس که اینجا یاد میشه گرگ یاد میشه یکل و میخور من الغنم القاسی از اون گوسفندی که از گله جدا شده گوسفندی نباشید که از گله جدا شده سید میشید تکی و تکروی و انعضال و عزلت و گوشگیری نتیجهش بیامتشیه سید شیاطین شدن دوستان اینجا بودن نیستن سرشان الان تو چیه بودن از کسایی که اهل صلاح بودن بلیکن الان اهل فساد شدن حافظ قرآن بودن در فساد افتادن همونطور که در دوران صحابه رخ داد عبد ابن ملجم حافظ قرآن بود چی شد؟ کی را به شهادت رسول علی بن ابی طالب رضی الله عنه ملعون شد با این کردارش با این رفتارش چه چی چیز سبب شد مفارقت از جماعت از جمع فاصله گرفتن سید میشه اونم یک زن او را گمراه کرد یک زن یک زن خارجی عاشقش میشه و اون عشق و اون ای که داشت نسبت به اون زن سبب گمراهی شد کسی کمی هم نبود در زمان عمر بن خطاب او را والی مصر قرار داده بود فرستاده بود مصر حافظ قرآن بود شانی منزلتی داشت ولی شد چی حقیر پست مقامی داشت شرفی داشت برای خودش ولی چی خارش کرد چیکو کرد؟ بدعت مفارقت از جماعت نه تنها فکر بکنید جماعت نماز تنهاست نه جماعت مسلمان ها راه و روش اصحاب قل حدیثی سبیلی ادعو الله على بصیره ان انا ومن اتبعني من پیروان من وجیدگان الله در قبال الذين اتبعهم باحسان رضی الله عنهم اونایی که بنی کی از اونها پیروی میکنن بعد با جمع اصحاب یاران باشید باید بر منهج اونها باشی روش اونها باشی هرگاه که روشت روی شخص اساساً نشود روش اصحاب یا ران رسول الله صلی الله علیه و نشود تو اس این جنب فاصله گرفتی کافی که یک کتاب آلودی بخونی از این جنب فاصله بگیری و یک کتاب آلودی رو بخونی در سب اصحاب در تکفیر در جایی هست که لقمه شیرینی بهت میدن یک کتابی از کتاب ها را از ائمه اهل سنت را بهت میدن با همون کتاب سم میره برات تو اون لقمه میذارن مثل از اون کتابایی که سید کردن جوان ها بهاش کتاب نواقض در اسلام محمد وحاب چیز عجیبی نیست تو این کتاب جل این مطالب در کتاب های فقی هست چه در کتاب ائمه شافعیه مثل نبوی که در مجموعه غیر داریم در احکام مرتد چه در کتاب ائمه احناف که این تا مذهب معتبه تنین مذاهب در ایران هست هرچکه در کتاب ائمه مالکیه و حنابله هم داریم ما ائمه احناف محابدوه ها با امثالش داریم در باب حکم ردت و حکم کف دادن خوصا بر افعال نه اشخاص احناف شدیدن در باب تکفیر مثلا من به عنوان مثال میگم نزد احناف تبریک گفتن نوروز هدیه دادن، هدیه گرفتن، رفتن سر جشنشون تماشا کردن جشنشون همه کفره کفره اگر به کسی گفتی ایدت مبارک و منظورت عید نوروز باشه که مال مجوسه کفر مرتکب کفر اکبر شدی نه کفر اصغر سخگیری علما در باب ولا برا ولی اینکه اون شخصی که نمیتونه تشخیص بده بین فعل و فاعل بین حکم بر فعل و حکم بر فاعل میاد سمی که گفتم در لقمه میذاره میاد از این برداشت علما از این نسوس یک طرفشو میگیره مثل فبیل للمسلم حالا قسمت دیگهشو نگیره لدین و صلاتم سهون قسمت باقیشو رها کرده موانعی داریم در حکم تکفیر، عذر به جهل داریم، عذر به تعویل داریم، عذر به اکراه داریم، عذر به عجز داریم، عذرا هست، بعض ممانع در نظر گرفته بشه، ممیججت در نظر گرفته، همینطوری نیست. علما ابداً حکم فعل رو دادن، حکم فعل مسئله دیگه هست. آقا این فعل فعل تبر گفتن، کفره چرا چون درش اقرار بر شرع غی الله شرع که الله حرامش کرده. هم شرکا شرعو لهم من انگار که شما اقرار دارید اینکه شرع اونها درست غیر از الله شرع میکنه در صورت غیر از الله کسی حق شرع را و تشریع را نداره از این باب اومدن حک دادن که بلک که این فعل این عمل کفر بره ولی که فاعل چی نه مسئله فقه میکنه بس این مسائل ما باید درش دقت بکنیم یک شخصی که جاهله و ادبیات علوم شرعی را بلد نیست با این کتابها سید میشه گمراه میشه میشه یک شخص خارجی مثل گفتم ادرحمن امن یک کتابه شاید اون شخص گفتم اون لقمه رو بهمون میدن از اون کتابه شاید عالمی ربانی باشه یا شاید اون شخص عالم نما باشه. یا اون شخص عالم نما باشه. جایی یک, شخص جای یک شخصی عالم نیست به عنوان اهل علق به ما تلقیم میکنن کتاباشو رو برای ما جلوه میدن بزرگ نمایی میکنن ما, ما میشیم سید اون فکر با غلوب در اون شخص شهید محراب، شهید نبید نبید فلان. با چهار تا جمله و غلوف سرایی در اون شخص گذافگوی و القاب دادن خوصا ناکنید این قضیه در اهل بدعت اون کسانی که از جماعت مسلمان ها مفارقت کردن و فاصله گرفتن زیاده میبینید که تحذوبشون تعصبشون به اون شیخشون اونقدر زیاده که چی؟ که با غیر از اون القاب و گذافگوی ها ازش یاد نمیکنن کنن پلامه دهرو حافظ و محدث و فلانو اینها رو ما باید حواسمون روش جمع باشه یک بدعته حالا میاد ان در حدیث بعدی یک بدعته ما کوچکش میشماریم همون بدعته سبب میشه که ما از جمع فاصله میگیریم مفارقت از جماعت پیش میاد قال ثوبیت النبي صلی الله علیه وسلم سلم كم من جار متعلق او متعلق بجاره یوم القیامه یقول یا رب هذا اغلق بابه دونی فمنع عروفه میگه چقدر از همسایگان روز قیامت که دست به همسایه‌شون آویخته و آویزن به بی همسایه‌شون گرفتنشون اونجا دستشون رو دارن میکشن در روز قیامت متعلقن به همسایه‌شون یعنی آویزان آویخته هستن بهشون حق هو و داره اون حق هو و حقوقه را اون همسایه ادا نکرده میگه ای پروردگار یا رب حالا اون شخصی که مظلوم واقع شده همسایه حقش رو ادا نکرده دعوتگر حقش رو ادا نکرده دعوتشون نداده همسایگانش احسان نکرده خوبی نکرده یقولوا یا رب بر الله هذا اغلق بابهودونی باب من اغلقه الباب علالجار کسی که در خکونه و بس بر همسایگان بارلاها این بود گرفته تشجالا جلوه الله وردتش این مجرم بارلاها این مجرمه این همون تبه کاره این هم ستم کاره ستمش چی بوده جرم چیه بابه بابهودونی در منزلشو بر من بسته بود فمن ام عروفه در حق من خوبی نمی کرد خوبی جایی با کلمه هست جایی با غذا و اطعاه جایی با احسان با تعزیه هست با تصریت اینا حق و حقوق کیه همسا فقط گفتم چی نمیبره؟ ث نمیبره. پس این حق و حقوقی که همسایگان داره و این حدیث اگر اونجا از با تشویق داشتیم اینجا با به نکوهشه خش داره ترهیبه که بدونیم روز قیامت ها این حدیث را قبلشی خالبان تضیف می کرد در ضعیف جامع حدیث۴۸ ولی خب بعدم با توجه به طرقش و اطلاع شیخ بر اسانیدش دش کرده در سالی سعیه دو هزارو ششصدوچهلشیش و همچنین صحیح ترغیب و تریب دو این حدیث رو تسهیه میگن خودشان احادیثی که تو ادب مفرد و ترغیب و ترهیب علی الخصوص که آخرین کتابای شیخه جز کتابای متأخر شیخه که اگر دیدیم حدیثی شیخ تسهیه یا تضعیف کرده خودشان در کتاب سالی سعیه یا سعی ترغیب و اگر تعارض دیدیم بین احکام سابق در صحیح جامعه سن دیدیم حدیثی در اونجا تصحیح شده یا تضعیف شده و برخلافش در ترقیب وترهب یا و سلسله هست حکم معتبر نزد شیخ آخریشه آخریش کدومه ترقیب ترهیب و, و سلسله سیه اینا حقوق همسایگان بیگانه نسبت به ما هست حالا همسایه که ارحام باشه چی اگر برادر باشه خواهر باشه چی وای وای برون شخص بل قال المؤلف رحمه الله باب لا يشبع دون جاره حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع بن جهدهومين باب از أبواب هذا المفرد من بخاري باب ولا يشبه دون جاره ممّن نبويت سير بشه وهم سيرهش قرء سنبوشه حديثه عشرة دوم حديثه عبد ابن المساور رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبروا ابن الزبير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله ابن الزبير مير كشيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارمات حديثك الصحابية الصحابي درناكم دونه لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جوع ليس المؤمن مؤمن نیست اون کسی که سیر میشه و همسایه‌اش گروس است حالا چند تا مطلب مطلب اول این حدیث نکوهش زم بر کسی که علم داره بر همسایه‌اش یعنی اطلاع داره بر حالش میدونه که همسایه‌اش گروس است ولی سیرش نمیکنه این حدیث نکوهش بر اون شخص این یک مطلب دوم که نوابی خصوصا تاکید میکنه روش در منهاج و در دیگر کتابهاش چراسای مسلم هم که در کتابای فقهیش که این نصوص وعید این نصوص وعید دو حالت داره نصوص وعید وقتی گفته میشه نصوصی که درش نفی ایمان مثلا اومده یا نفی دخول بهشت اومده که بازم خواهد اومد و قبلا بود بازم اینجا دوباره تکرار میکنی دو حالت داره حالت اول اینکه شخص مستحلی باشه مستحل حرام باشه بگیش بگی رسول الله صص گفته بعد با کمال گستاخی و بیاد بیاد بگی رسول الله به خودش گفته خب این مستحله یعنی اون شریعت محمدی را علیه الصلاه و السلام ناپسند شمرده این ناپسند شمردن کفره زندقه هست این ناپسند شمردن زندقه است کفره این نفی ایمانش نفی ایمان حقیقیه ایمان نداره اگر ایمان داشت که کلام و سخن رسول الله بر اثر حالت دوم عاصی اول زندیق دوم عاصی میدونه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم با این وجود سوسی به خرج میده سهلنگاری به خرج میده در مقابل همسایگان این شخص عاصیه گناهکاره این شخص این نفی ایمان در قبالش نفی ایمان حقیقت ایمانه یا زیادت ایمانه یعنی ایمان کمالش ازش نف شده یا اصلش لا مشاحة في قال ميخاي فارق نظري بيني من السلاحات يا فرق. فارق هي دقيقة. إن أحاديثها سك تعمين خبرت شده. ليس المؤمن مؤمن نست. مثل فع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن. نفي إيمان شده. من غشنا فليس منا كسيك تغلب بكونه غش بكونه أزمنيست. حالا از ما چه نوع ایمانی ازش نكشته اصل ایمان یعنی شخص ایمان حقیقا ازش نشده اصل ایمان ازش نشده یعنی اصلا مؤمن نیست یعنی اگر تو سیر شدی همسایت گرسنه بود تو کافری این برداشت میکنی، این برداشت خواراج پس چه برداشت می‌کنی از این حدیث باید بیایم نصوص رو کنار هم دیگه بذاریم اولا الله جل شانو در قرآن فرق میذاره بین گناه و معصیت و بین شرک و کفر در مورد کف میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به الله كفر الشرك نامی باخشه نمی آمرزه. إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك قنهم عسياته. لمن يشاء برکس كه با خلق قنهم عسياته نمی باخشه. فش شرك اسکه الله نامی باخشه ولی قنهم عسياته الله نمی باخشه. این یه قسمت از قرآن. از سنت ما نوسوز زیاد داریم. از سنت ما نوسوز زیاد داریم. که شخص نفی ایمان شده ولی در قبالش مثلا اثبات ایمان داریم. زانی لا ی عزیز زنی خین یزنی و هوا مؤمن زناکاره آیا زناکار با زناش مرتد میشه گردنش باز زده بشه یا سنگسار میشه که حد روش اجرا میشه و کفاره میشه درباره قامدیه رسول الله چی میفرمایند وقتی که توبه کرد بعد زایمون میکنه بعد میگه شیر بده دو سال بچت بعد حکم روش اجرا میشه رسول الله ص در مقابل توبه چی میگه توبه ای کرده این زن که کفایت میکنه اهل رو یعنی این توباش پخش بشه میان اهل کفایت میکنه سقدر تو باش خب حدی که روش اجرا شد کفاره میشه از اون گناهش نه کفر این حد در مقابل چیه گناه اسمه نه در مقابل کفر چون اگر کفر بود حد کفر چیه سر زدن باید سرشو با شمشیر می‌زدن ولی این حکم رو رسواست ولی اش نکرد خب اینا حدیث دلقات برای چی میده برای اینکه نفی ایمان نفی اصل ایمان نیست نفی کمال ایمانه از جمله چیزایی که کمکمون میکنه در برداشت درست و صحیح از این نصوص جنبستن بین نصوصه که ما بتونیم فرق بذاریم بین اصل ایمان و کمال ایمان و کمال مستحب کمال واجب داریم کمال مستحب داریم اینها اصطلاحات برداشت ها هست همونطور که رسول الله صاحب نیمدن به همون بگن این فعل فاعله ولی ما میدونیم که اینجا این الله فاعله اینجا اینجا این مثل این جمله این کلمه مفعوله یا نمیدونم جار و مجروره یا مضاف و مضاف الیه هیچ کدوم از اون دوران صحابه نبود چون میدونستن اصلا یک چیز بدیهی بود بناشون ولی بعدن علما آمدن به خاطر اینکه مردم از لغت عربی فسیح فاصله گرفتن اومدن فرق گذاشتن بین اینها تا اینکه جمله را شخص درست بفهمه برداشت بکنه همین طورم این اصطلاحات اصل ایمان وكمال وكمال و کمال واجب و کمال مستحب اینها قواعدی اصولی که از دوسوس قرآن و سنت برداشت شده برای فهم درست برای اینکه ما در تکفیر نیفتیم مثلا فرموده ی الله جل شانه ثم ورثنا الكتاب الذين صفینا من عبادنا ورثنا الكتاب مالا لم ریا صبر دین و ایمانی ما پیامبران الهی از پیامبران الهی گرفتیم تا رسید به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام الذين صفینا من عباد فمنهم ظالم لنفسه نفسی و من هم مختص ومنهم سابق بالخیرات ست رت بره اینجا الله یاد میکنه. فمن هم والالله نفسه و من هم مختصد و من صابقم این چی؟ خب الله جل شانه بما ما یادآوری میکنه که اگر شما چیزی نفهمیدید از قرآن پیان هست که بهتون باز زلنا لي که الذكره لتوبنا للنا منوزل علههم منزلناله ای محمد بر تو قرآن رو نازل کردیم تا اینکه به مردم بیان بکنی بگی که منزوره ما چی بوده؟ maksud ما چی بوده؟ رسول الله ص ص مبین این آیاته. خب برای فهم درست بیایم حدیث جبرئیل. الله پیغمبرشو میفرسته برای فهماندن ما این از این اصول شریعت. تا گفتیم در اون تکفیر نگفتیم، تا خارجی نشیم. جبرئیل میاد، زانی بزانی رسول الله ص ص می نشینه. سوال میپرسه، مال اسلام، اسلام چیه؟ میگه شهادته، نماز، روزه، حج، زکات، درسته؟ بعد میگه مال ایمان أن تؤمن بالله ملكته وكتبه ورسيه واليوم الآخر والقدر خيره وشره إيمان بالله وروز واخراته في الاشتقانه في انبرانه كتوه واسمانه هزاوه قدر الخيرش وشرش ما الإحسان؟ إحسان شيء أن تعبد الله كأنك ترافا إن لم تكن ترافا هو يراك ستة الرتبة رياض كات درسة الله بين ستة الرتبة فإن فرمو الله جل شأنه ثم ورث الكتاب الذين الصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ما الإسلام قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اي اعراب شنو ادريت دار انتم مؤمن شديد ميجيت مو مؤمنين وقالت الاعراب امننا قلت مو مؤمنين قل لم تؤمنوا درست ولكن قولوا اسلمنا بغو بها ايمان ما ورديت شنو مسلمونيد نفي ايمان شدن اعرابك النفي شنو يعني با اون شهادت وارد اسلام شدن شخصی در جنگ شهادت این را میگه اصابه بنوزید میده و پشت سرش چمشیر اون شخص میندازه میگه اشتا لا اله الا الله گردنش رو میزنه صحابه شکایتش میکنن نزد رسول الله صلی علیه و وسلم که اصامه فردی را کش شهادت این گفت رسول الله صلی اللہ نراحت میشه خشکی میشه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله بعد از این کلمه توحید را کشتی؟ بعد از این مؤمن شد ا یا راست الله متدن این خاص خودشو پناه بده خودش با این کلمه پناه بده که مرو رو نکشه. قال عش وقت انقلبه قلبش رو باز کردیمشه گفتی که ببینی ما معمور به قلب کسی نیست ما معمور به ظاهری. پس با این کلمه شخص مؤمن میشه مسلمان میشه ولی این ایمان درجات داره درجه اول که همون اسلامه که عراب تا الله در شعن ها میگه. شما که ما مؤمن شدیم بگید که ما مسلمان شدیم ثم ورث الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه یعنی رتبه ظالم لنفسيها شخص مرتکب ظلم میشه مرتکب اشتباه میشه به خاطر عدم علمش جهلش چون در حلقات علم نمینیشینه جاهل مرتکب حرام میشه چرا مردم نگاهنا محرم میکنن موسیقی گوش میدن یا زنا بد حجابن الا چرا در این ظلم افتادن فمنهم ظالم نفسه چون ظاهر اسلام را گرفتن حقيقه اسلام را نگرفتن پس اصل ایمان رودارن دارن ما نمیتونیم اصل ایمان رو از اونها را بگیریم یعنی اینجا نفی ایمان خصوصا در این حدیث لیس المؤمن نفی ایمان نفی حقیقت ایمان نیست اصل ایمان رو دارن اسلام رو فهمیدن ظالمون نفسه از اون کسانی که ایمان میارن کسانی در حق خودشون ظلم میکنن ظاهر اسلام رو میگیرن مل اسلام قال انتشهد اله این رتبه ای اول اصل ایمان رو داره رتبه دوم از اون اسلام بالاتره که اون اعراب ادعا میکردن که در ازای علم میاد و منهم مقتصد کسی اقتصاد میکنه حلال و حرام ها را پایبند بهش میشه هرچی چی واجبه سر وقت نمازها میخونه روزه هاش همه میگیرن کوتاهی نمی کنه درش اقتصاد میکنه بر اون چیزی که برش فرضه خب این چیه کمال واجب یعنی اون واجبی که هست به طور کامل و تمام انجام میده همسایه دوست رفیق پدر مادر همه حقوق را رعایت کرده این کمال ایمانه خب این کمال ایمان اگر خدشدار شد چی میشه؟ حق حقوق همسایه را ندادی نفی ایمان ازت شد به چه رتبه میرسی؟ به رتبه عرام به رتبه ظالمون نفسی نفی ایمان وقتی که ازت میشه چرا ایمان ازت نف شده؟ کمالش از تو نف شده نه اصلش تو که وارد اسلام شدی شهاده رو گفتی مسلمان هستی ولیکن اینجا کمال ایمان از تو نف شده رفتی به پ پوینترش در درجه اسلام میتونی سبقت بگیری و منهم سابقون بالخيرات کسانی هستند سبقت میگیرن یعنی اکتفا نمیکنن به کمال واجب بلکه کمال مستحب را هم انجام میدن سابقون بالخيرات که درجه احسان که رسول صلوات علیه الله کانانک تراه یعنی بالاتن جلوه ایمانی که همه جا الله مراقب خودت به و ببینی این بالاتن رتبه هست شانه اینها را باید شخص بدونه اگر ندونست این پله ها و رتبه ها و این استلاحات و توجه به این نصوص میشه خارجی میشه تکفیری اینها را باید ما یاد بگیریم این سخنان رسول الله صلی الله علیه سلم. اگر کنار هم دیگه نزاریم با نصوص قرآن و سنت ما منحرف میشیم پس اینجا نفی چنه و نفیه؟ نفیه کمال ایمان نه نفیه اصل ایمان شخص کافر نمیشه از اسلام خارج نمیشه پس وقتی که شخص تمال ایمانش دوچار نقصان میشه لیس المؤمن اینجا در حدیث داریم دیگه لیس المؤمنو الَّذِي يَشْبَعْ وَجَعْ جائع من اگر سیر شدم همسای هم گناهکار شد از درجه ایمان رفتم به درجه اعراب رسیدم درجه اسلام رسیدم آیا ظالم و نفسی شدم یا نه؟ شدم با چه فعلی؟ فعل مباح و مستحب شدم درجه ظالم و نفسی یا فعل حرام؟ و فعل حرام پس اگر من سیر باشم و همسایی نه، من چیم؟ گناهکار اگر همسایی از همسایی هم گرست نه باشه، من سیر، من مؤمن چیم؟ حکم به غیر معنزل الله کردم حکم به معنزل الله چیه؟ اینه که تو سیر نباشی و همسایی هم گرست نباشه حکم الهیه، حقی که همسایه به گرده میداره تو اول شریعت رو بر خودت تطبیق بده اول در خود شریعت رو بید، چقدر به این شریعت پایی بده؟ اینجا هست که انسان با این حادث میدونه که چقدر کوتاهی داره خیلی مونده تا به اون درجات برسه قدرش و منزلتشو میدونه سببیش انسان از اون کبر و غرورش بیاد پایین بارک الله فکرم و صلی الله علی محمد و آل محمد